در آیه شریف دارد وذکر الله فی ایام معدودات شما به یاد خدا و ذکر خدا به با صلاب باشید در ایام معدودات که در دارد مراد دهه اول زیه است سفارش خیلی شده که نسبت به ذکر وذکر الله فی ایام معدودات در این ده روز اول ماه حجه خیلی سفارش شده لذا شما ها دعاهایی که بارد شده نگاه بکنید همش ببینید جنبه توحیدی توش داره همه همه ببینید که بیانگره چیه؟ اظهار توحید است تحجیم که چی لا اله الا الله چی؟ عدد اللیالی و الدهور لا اله الا الله عدد انواج البحور سخفم نمیخواد بذاره مفهمی چی میگم؟ لا اله، که ذکر ها؟ ذکره، ذکر لا اله الا الله ذکر است. دیگه نیست، اینجور این ده دهه ذکر است. ذکر توحیدیست، است بخونید این و اینجور سفاره شده تو خود این دهه من گفتم مثلا برم سراغین و حتی ما در روایات داریم در فضیلت این دهه به خصوص نسبت به چی؟ نسبت به اعمال چی؟ ساله تاج میکنیم که در این یه بحثی هم اینجا اهل هم معرفت دارن و چی دارن به اینکه چی جوری ما جمع کنیم بین روایاتی که وارد شده در فضیلت این دهه و ماه زیحجی و فضیلت ماه رمضان اینجا چیکا کنیم؟ اون بالاتره یا این بالاتره؟ یه بحثایی هم کردن و نمی کنیم کنیم چا بارد این بحثا بشم این که گاهی ازشون در مید به اینکه این دهه افزال از ماه مبارک رمیزانه حالا من به چیزی اشاره کنم شما روز روز عرفه را یا نه ها میگن تو محرم اگر چیه عمرزی نشو الا انچی حتی حتا یش حتی عرفه بعضی گفتن به اینکه خود روز عرفه خصوصیت داره و زمین عرفات زمانو ها مکان رو اصلا نه نه داره اما نمیخوام کی بوشم بعد بعده من نمیخوام وارد این بحث چیزی بشم فکر بشم کجا جمعش کردم میخوام این عرض کنم که حتی به انجام رسیده کار توجه کنید انقدر نسبت به این ده میخواستم اینها رو بهتون بگم با قفلت نکنین از این دعاها نسبت به ایام حالا ایک روایت از پیدا برمار بخونم بخونم دارد رویان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من ایام از کاعند الله تعالی و لا اعظم و من اشر الالها این یه که ایامی پاکیزه نزد خداوند بند و از نظر اجر عظیمتر و بزرگتر نداریم از دهه اول چی زیهن در یه روایتی است ما من ایام العمل و صالح احب الله عز وجل من ایام العشر یعنی عشر زلحج در اون روایت قیله در قال یا رسول الله ولل في فی سبیل الله یعنی اینجا شما گفتین حتی جهاد الله خدا قال ولل جهاد فی سبیل الله مجید ایلاله رجلو خرج به نفسهی و مالهی فلم یرجه هیچ منزالک مگر یک کسی بره چی؟ در راه خدا جهاد بکنه شو مال و جانشو همه رو بده هیچی تش نمونه برم نگرده ها نه همه هم مال و هم جانشو همه نه اون بالاست اون بالاتر تر تمام اموری را که جزع تلقات توست چیه؟ حالا غرزم این بود. این دهه از اون دهه است که خصوصیت دارد و دیگه با نمی میخوام وارد یک سه مسائل بشه اما دهه بود که هزت موسا رسید به اون چیزش دیگه اما اول بودینه چی چیه؟ این دهه دهه تجلی رب بست نمیتونم چیکار کنم ما آکشیده میشیم بریم این دهه دهه تجلی رب بست بر عبدش همون گونه که تجلی کرد بر موسی سلام الله علیه درست اونجا ها؟ و خرم موسی سلام جبل چیزشم بره خودی منی همش پاشیده شد از هم جو بخیر موسی سهم تو این دهه یاد خدا زیاد بکن به اجرام اللهم صل علی الله